بخش چهارم، پایه های آناتومیک حافظه در همان حال که تحقیقات بیوشیمیایی روی سلول های مغزی انجام می‌گیرد، پایه‌های پایه های آناتومیک حافظه نیز تعین شده و به عبارت دیگر سعی شده تا محل آن را در قشر موخ یا قسمت زیرین آن که به نظر می رسد تمامی آنها برای روند طبیعی حفظ کردن و بازیابی تصاویر ضروری هستند مشخص سازند. به همین دلیل مطالعاتی بر اساس مشاهدات آناتوموپاتولوژیک و جراحی اعصاب و آزمایش با قطع مناطق کاملاً مشخصی از مغز روی مهردارانی نظیر میمون و گربه صورت گرفته است. در رابطه با میمون دیده شده که تخریب در بخش کورتکس گیجگاهی یا قشر تازه مخ، باعث ایجاد اشکالاتی در به خاطر آوردن و آموزش مسائل تشخیص بینایی می گردد. فلکسنر و ریچارد بر دو فیزیولوژیست آمریکایی سعی کردند با استفاده از انتیبیوتیک های مختلفی مانند پیرومایسین مکانیسم به خاطر و حفظ کردن را در موش خورما متوقف سازند. این نتایج نشان داده اند که در کورتکس مناطقی وجود دارد که نقش اساسی را در حافظه بر عهده دارند. آنها تشکیلات سازمان سازمانیافتهی به صورت مدار بسته هستند که مثلا شامل هیپوکامپ، هسته های پیشین و غیره می شوند. البته در حال حاضر نمی توان از یک مرکز واقعی حافظه سخن گفت. ولی به هر حال به نظر می رسد که فعالیت برخی از مناطق مغز برای حفظ و نگهداری خاطرات در دراز مدت و برخی دیگر برای به خاطر آوردن و حفظ خاطرات در کتا مدت ضروری است. به همین دلیل در انسان هنگامی که قطع هیپوکامپ از طریق جراحی به دلایلی ضروری می شود، بیمار گاهی اوقات هیچ چیز را بیش از یک رو به خاطر نمی آورد. در حیوانات با وارد ساختن مستقیم روی یا پوتاسیوم در این منطقه یادگیری را متوقف می سازند. همچنین باید متذکر شویم که هیپوکامپ از طریق متابولیسم شدید پروتئین ها و فعالیت الکتریکی که به نحو قابل ملاحظه‌ای در هنگام جمعآوری و ذخیره اطلاعات جدید افزایش میابد از سایر قسمت مغز متمایز می شود. علاوه بر آن مشاهده شده گاهی اوقات تحریک مغز بویایی که مثلا از طریق سوند زدن برای عمل جراحی ضرورت پیدا کرده باعث زنده شدن مراحلی از خاطرات گذشته در بیمار شده است. به نظر می رسد که این تحریک از مغز بویایی تا برخی مناطق گیجگاهی گسترش میابد. همانگونه که می بینید اطلاعات در مورد یکی از جالبترین مسائل فیزیولوژی مغز یعنی حافظه از زمانی که نظریه های روانشناسان قدیمی مورد تجدید نظر قرار گرفته، به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در این حال، هنوز های بسیاری در مورد حالت ملکلی، آناتومی، الکتریک و فیزیولوژیک حافظه وجود دارد. علاوه بر آن به نظر می رسد که حداقل در حال حاضر حل این مشکل اساسی که چگونه مکانیسم های شیمیایی، الکتریکی و فیزیولوژیکی قادرند شناخت حواس و ذهن را به حافظه بسپارند و به طور کلی این ابهام که فکر چیست غیرممکن باشد. و این سوال که چگونه آنها می توانند به عنوان مثال حساسترین مسائل ریاضی و یا فلسفی را مورد بررسی قرار دهند؟ و یا ساده‌تر از آن چگونه قادرند احساس سرما، گرما، گرسنگی یا تشنگی را به ما بدهند؟ بیپاسخ مانده است. این همان مسئله است که مونیک دومرون لاندو درباره آن می‌نویسد هنوز هم برای توضیح این مسئله که از طریق کدام سازمان درون مغزی، هزاران اطلاعات با های داخلی یا خارجی جمع نگهداری و به هم متصل می و یا اینکه چگونه برای هر یک از اطلاعات دریافت شده، جریانهای الکتریکی یا پاسخها، بیوشیمیایی یا حافظه و هورمونی رفتارهای متناسب با آنها ایجاد می شود با اشکال مواجه هستیم. بخش پنجم. شرایط نگهداری و ظهور مجدد تصاویر ذهنی بخش مهمی از قابلیتی که مغز برای زخیر سازی و احیاء مجدد تصاویر دارد، وابسته به حالت فیزیولوژیکی است که در آن قرار می‌گیرد. مثلا قدرت حافظی شخصی که به شکل نامناسبی تغذیه می شود، بد تنفس می کند یا در فضایی بسته و محدود قرار دارد، کاهش می خستگی یا برخی عناصر شیمیایی نظیر برمورهای بکار رفته در داروهای شیمیایی نیز بازیابی تصاویر را مشکل‌تر می‌سازد. پس از چندین ساعت گوش دادن به موسیقی، بازگشت تصاویر شنوایی مشکل بوده و پس از یک بازدید طولانی از یک موزه نقاشی، تصاویر بینایی به سختی در حافظه نقش می‌بندد. در این رابطه، جی بوشر روانشناس و بازرس عمومی وزارت آموزش و پرورش، یادآور می که یک پزشک انگلیسی پس از بازدید از کارخانه آلمانی، از شدت خستگی تمام زبان آلمانی را که آموخته بود فراموش می کند. حافظه این زبان، زمانی باز می گردد که او نیروی از دست رفته خود را باز یابد. برعکس برخی از محرکها نظیر قهوه یا کلاها باعث میشوند تا تصاویر به طرز بهتری بازیابی شوند. در همین رابطه در فصل چهارم خواهیم دید که چه مواد غذایی برای حافظه و به طور کلی برای اعمال فکری مفید هستند و سپس در فصل هشتم خواهیم دانست که چگونه میتوان انرژی روانی را از طریق تمرینات تنفسی و بخور یونهای منفی اکسیژن بهبود بخشید. ولی تثبیت و بازیابی خاطرات نیاز به شرایط دیگری خصوصاً روانی دارد. این موضوع را از نظر علمی در فصل نهم بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله شدت تأثیر گذاری و احساس اولیه است. یک واقعه، یک نمایش و یا یک موضوع مورد مطالعه که تأثیر قوی از خود بر جای گذاشته است به سادگی به خاطر سپرده می شود. و هر اندازه که این موضوع برای ما جالبتر بوده و یا از نظر عاطفی ما را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد، حال خوشایند یا ناخوشایند، آن را بهتر به خاطر می سپاریم. ریوارول می نویسد، حافظه همواره تابع دستورات قلب است. توجه ارادی و اندیشیدن نیز نقش مهمی بر عهده دارند. چیزی که معمولا خوانده و یا مشاهده شده است، به طور معمول خوب به خاطر سپرده می شود. اگر در برداشت و یا احساس شدید اولیه عامل عاطفی و توجه وجود نداشته باشد، تکرار این تأثیر پذیری، حفظ کردن و به خاطر سپردن موضوع را تسهیل می کند. این رایشترین روش حفظ کردن است. ترتیب و سازماندهی برداشتها نیز از شرایط اساسی برای به خاطر سپردن به نحو مناسب می باشد. این سازماندهی و ترتیب شامل جمع‌آوری خاطرات و دسته‌بندی آنها می شود. ویلیام جیمز می نویسد حفظ یک خاطره نتیجه تعدادی از موضوعاتی است که آن را تداعی می کند. در واقع، هر اندازه که یک خاطره بیشتر منظوی باشد به عنوان مثال تاریخی که هیچ گونه معنای خاصی ندارد مشکلتر آن را حفظ می کنیم. این گروه بندی ممکن است حالتی مصنوعی داشته باشد ولی ترتیب منطقی و اقلانی ارجحیت دارد، زیرا حافظه و هوش پیوند و ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در عین حال تسبیت خاطرات چیزی ورای یک زبط ساده و انفعالی تصاویر است و از هوش و اراده سرچشمه می گیرد. در وحله اول مانند هر نوع تظاهر هوشی دیگر یک انتخاب را مطرح می سازد. خاطره را قبل از آنکه به صورت قطعی در میان ساکنین روح قرار دهیم آرایش می‌کنیم. به عبارت دیگر تسبیت خاطرات مستلزم انجام عمل است که این عمل را تنها در شرایط مشخصی می توان انجام داد. به عنوان مثال، به نظر دکتر پیر مورد یک دیدبان را که حرکات و اقدامات دشمن را برای آنکه بتواند به فرماندهان خود گزارش بدهد و بیماری را که علائم بیماری خود را به خاطر می سپارد تا بتواند بعدا آنها را برای دکتر خود تشریح کند می توان نام برد. به طور کلی، برای آنکه شخص قادر باشد، این خاطرات را برای خودش یا دیگری مجددا تکرار کند، باید آنها را تثبیت کند. بخش ششم بازشناسی خاطرات بهتر است یادآور شوم که حفظ تصاویر و بازیابی آنها به تنهایی حافظه را تشکیل نمی دهد، بلکه این موارد فقط عملیات اولیه است که در تدائی افکار و تخیل مشترک می باشد. حافظه در صورتی که با عمل بازشناسی و یا به عبارت دیگر آگاه شدن از گذشته همراه نباشد، کامل نخواهد بود. به بیان دیگر، حافظه واقعی شامل دوباره شناختن حالات آگاهانه است که در حال حاضر مانند گذشته تشکیل شده اند. برگسون در کتاب خود به نام ماده و حافظه می نویسد، ما یک عمل واحد را میشناسیم که از طریق آن، از زمان حاضر جدا شده، و در وحله اول به طور کلی در گذشته و سپس در منطقه خاصی از آن جا, جا میشویم. این شبیه به کاری در تاریکی و در واقع مانند تنظیم دوربین در تاریکی است. ولی در این حالت خاطره هنوز در حالت مجازی قرار دارد و ما این کار را انجام می دهیم تا با در پیش گرفتن حالت مورد نظر آن را به دست آوریم. به تدریج مسئله مانند ابری که متراکم می ظاهر می شود. و سپس از حالت مجازی به صورت واقعی در می آید. کم کم هاشیه های این خاطره شکل گرفته و سطح آن رنگ می گیرد و سعی در ایفای نقش یک دریافته حسی را دارد، ولی در همان حال از طریق ریشه های عمیق خود به گذشته متصل است. اگر این ایفای نقش زمانی به حقیقت بپیوندد و حالت مجازی خاطره احساس نشود، درست مانند حالت حاضر و چیزی که همکنون اتفاق می افتد، دیگر آن را به عنوان یک خاطره نخواهیم شناخت در واقع این تمایز در حالت جنون انجام نمی شود و شخص دیوانه پندارهای درونی خود را به جای واقعیتهای حاضر می گیرد در اینجا یاداور می شویم جنون را که معمولا پیری یا دوران قبل از پیری حافظه و هوش می باشد نباید با از خود بیگانگی که عوام آن را نیز دیوانگی می اشتباه گرفت در یک فرد عادی این حالت خداگاهی از گذشته کمابیش به صورت کامل است. هنگامی که خاطرات با تاریخ مشخصی همراه باشند، کامل می شوند. به عبارت دیگر، بازشناسی خاطرات ممکن است توهمات مختلفی را به وجود بیاورد. بدین ترتیب در حالت الهام، گاهی اوقات شاعر بیتی را میسراید که تصور میکند اصیل است ولی در واقع متعلق به شاعر دیگری است که به آن خاطره ناقص یک خاطره پردازی گفته میشود و سرانجام هر تصویری که به نظر ما کاملا جدید آمده و تصور میکنیم توسط ما خلق شده در واقع در اکثر اوقات یک خاطره کمابیش کما بیش تغییر یافته است که به سایر خاطرات وابسته است گاهی اوقات بخشی از آن و یا حتی به صورت کامل خاطر پردازی می باشد. در این زمینه مورد لینه را مثال میزنند که در سنین کهولت نوشته های خود را مجددن میخوانده بدون آنکه آنها را بشناسد و از دانشمندی که آنها را نوشته بود تعریف و تمجید می کرده است. نیوتون و والتر اسکات نیز دوچار این حالت شده بودند بخش هفتم توهم قبلا دیدن برعکس گاهی اوقات به نظر می رسد که یک دریافت حسی جدید در واقع یک خاطره است شخص در این حالت احساس تکان دهنده ای دارد و یک مرحله از زندگی حاضر وی در واقع تکراری مختئی از گذشته اوست این پدیده همان چیزی است که به آن توهم بازشناسی شناسی دروغین قبلا دیدن و یا قبلا زندگی کردن نیز گفته می شود. و در اصطلاح علمی کارنزی نامیده می شود. به عنوان مثال شخصی در هنگام گفتگو با کسی دچار احساس دروغی می شود که گویی قبلا نیز در همین حالت در همین محل و با همین شخص این گفتگو را داشته است. یکی از افراد مورد مطالعه روانشناسی به نام دوگاس می گوید، به نظرم رسید که دوباره یک دقیقه از زندگی خود را قبلا در شرایطی مشابه شرایط همین زمان گذرانده بودم تکرار میکنم. مثلا در همین وضعیت به صورت ایستاده و کنار همین میز در یک روز زیبا، مثل همین حالا، با این گلدان پر از گل داوودی در سمت چپ و یک چراغ در روبروی من. من این مجله را نیز قبلا خانده هم. از سوی دیگر، آلفونس دوده می نویسد روزهای وجود دارد که هر چیزی را که در آنها اتفاق می افتد به نظر می رسد نیز برایم اتفاق افتاده، و یا هر کاری را که انجام می‌دهم، احساس می‌کنم که مدتی پیش نیز این کار را انجام داده‌ام. بحث زیادی برای توجیه این پدیده قبلا دیدن انجام شده و حتی برخی از محققین تا آنجا پیش اند که گفتند این مسئله یکی از دلایل تناسخ روح است. این پدیده شاید همچنین موضوع اصلی زندگی قبلی و بازگشت جاودانی نیچه و نظریه افلاتونی پیرامون خاطره است. در واقع به نظر می رسد که در این توهم خصیصه حاضر بودن دریافتهای حسی نفی شده بیشتر مطرح است تا اینکه تأکیدی بر خصیصه گذشته بودن آن باشد. زمیر شخص در مخته بسیار کوتاهی بدون آنکه محیط پیرامون خود را به زمان حاضر نسبت بدهد آنها را به صورت خودکار زبط می کند. در مجموع همه چیز به گونه اتفاق می افتد که این احساس بازشناسی دروغین بر اثر یک لحظه بیتوجهی یا در رویا بودن به وجود می آید. بدین ترتیب شخص مورد مطالعه پروفسور دوگاس در وهله اول بدون آنکه واقعا میز گلدان گل داوودی و لامپ را دیده باشد آنها را نگاه کرده است. او آنها را از طریق حواس و مغز خود زبط کرده ولی در طول این دوره کوتاه زبط اندیشه آگاه وی در حالت خفته بوده است. در لحظه بعد، هنگامی که تصاویر مورد بحث مجدداً به مغز وی می رسد، این احساس را در شخص به وجود می آورد که گویی مربوط به یک حالت آگاهی قدیمی و گذشته است که شخص قبلا در آن زندگی کرده است. در نتیجه همانگونه که دکتر ژان دلی می گوید، یک توهم از وجود ایجاد می شود. یا همانگونه که فروید می نویسد، یک بازشناسی واقعی که به خاطری دروغین تغییر شکل داده است. از سوی دیگر، جی ای اور از بیمارستان میدلوود در شفیلد انگلستان رابطه بین پدیده قبلا دیدن و نظریه های زمان را در کتاب خود به نام زمان تجربه و رفتار مورد بحث قرار داده و در آن نتیجه تحقیقات آر افرون که نیمکوره های مغزی یک پیام را به صورت همزمان مورد بررسی قرار نمی دهند به عنوان دلیل ذکر نموده است. در شخص راست است، محرکی که در سمت چپ بدن ایجاد می شود، با تأخیری از دو تا شش هزارومه ثانیه به نیمکوره چپ می رسد. طبق نظریه افرون، چون نیمکوره راست که بدون ارتباط مستقیم با زبان که مرکز آن در نیمکوره چپ است می باشد، اولین است که پیامی را که از بخش چپ بدن می رسد دریافت می کند، قادر به ابراز این احساس نیست و تأخیری که به وجود می آید، به دلیل عبور این خبر به نیمکوره چپ می باشد که فرمان اظهار گفتاری آن را صادر می کند. اگر باز هم توقفی این انتقال را به تاخیر بیاندازد، ممکن است شخص احساس کند که همه چیز دوبار اتفاق افتاد است، مانند تنین یک صدا. ولی این توضیح قادر به توجیه احساس ذهنیی که شخص یک گذشته دور را به خاطر می آورد نیست. این مسئله نیز وجود دارد که پدیده قبلا دیدن گاهی اوقات با یک استراب غیرقابل وصف همراه است درست مثل اینکه این خاطره در بافت هیجانی و احساسی قرار دارد علاوه بر آن محل مرکز زبان هنوز به صورت واضح مشخص نشده است گاهی اوقات نیز پیش میآید که تصور می کنیم یک موضوع خیالی خاطره ای حقیقی از یک واقعه است و این پدیده چند نکته مشترک با یک پدیده واقعی در گذشته دارد. در حالی که چون این چیزی واقعیت ندارد. گته میگوید از میان خاطرات کدکیش امکان دارد که بسیاری از جزئیات آنها زائیده تخیلات وی بوده و آنها را به خاطرات واقعی متصل کرده و برای او این توهم را تا مرحله‌ای به وجود آورده باشد که تشخیص خاطرات واقعی از آنها برایش غیر ممکن گردد بوشه می نویسد. گاهی برای همه ما پیش می آید که زمن تعریف یک واقعه خاطرات خود را یا به صورت غیر ارادی بر اثر فراموشی و یا عملاً برای آنکه داستان خود را جالبتر یا غمنگیستر جلوه دهیم تغییر می دهیم حال اگر این موضوع را چندین بار به همین صورت تعریف کنیم، سرانجام جزئیاتی را که تصور کرده ایم با جزئیاتی که واقعا درک شده اند در هم می آمیزیم. و از این به بعد این دسته از تخیلات نیز به صورت جزئی از قسمتهای واقعی خاطرات ما در آمد. هر انسانی هر اندازه هم که صادق باشد، بر اثر نظریات، عقاید یا احساسات ناخداباه خود و از راه تخیل خاطراتش را به ناچار تغییر داده. و خاطرات دروغین را بدون آنکه آنها را از بقیه تشخیص دهد با سایر خاطرات خود در هم می‌آمیزد اگرچه این افسانه است ولی یادآوری می‌کنیم که تاراسکن تاتار بر اثر این تعریف دروغ که تا های رفته سرانجام خود وی نیز این دروغ را باور کرده بود و چیزهایی را که تخیلاتش خلق کرده بودند به عنوان خاطرات های ارائه می‌کرد از این نکات نتیجه می‌گیریم گفتار که متکی به حافظه است ارزش یک نوشته در زمان وقوع حوادث را ندارد و هنگامی که پژوهشگران در اواخر زندگی خیش خاطرات خود را می نویسند، حافظه می تواند مدرک مشکوکی محسوب شود.